بسم الله الرحمن الرحيم يبشر الuride alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکات او خوش جور خوشجور و صحتمند باشین و با امیدواری باز هم برنامه جدید از برنامه های عقیده در قرآن و سنت خدمتان تقدیم میکنیم در برنامه یا در دهمین ده برنامه قرار داریم دوستان عزیز, عزیز. از که فامیدن افعال الله جل جلو بسیار مهم است برنامه دهمی ده را هم اختصاص دادیم برای افعال الله جله فقط این برنامه خواستیم که اقسام افعال اول خدمتتان بیان بکنیم که افعال چند قسم است دو قسم فعل است یکی فعل است که مخصوص خالق است و یکی فعلی است که مخصوص مخلوق است اینال افعالی که مخصوص خالق هستند این هم ویژگی ها و, و خصوصیت های خود دارند و افعال که مخصوص مخلوق هستند ای هم ویژگی ها و خود ستار خدا خوب امروی من ام متوجه باشین که افعال خالق با افعال مخلوق چه قسم فرق بکنیم افعال خالق افعال است که به عظمت جلال بزرگی که بریای الله الله جل جلجاله شایسته هست و افعال مخلوق افعال هست که به مخلوق بودن ازی دلالت میکنه چون مخلوق محتاج است محتاج است ولو که یک نفر نابغه جهان هم و باز هم انسان احتیاج است چه احتیاج است بخو احتیاج دارند. من خودم که شو ساعت دوازده یک بجه که بیدار باشم سبا صوبگی در نماز صبح وضعیت می باشه که کلیم گنگس از گنگس هست چرا می فهم که ما بسیار آجز و ناتوان هستم اگر یک روز نان نخورم و سبای ایروز روز کار کرده نمیتانم هیچ پس آجز هستم محتاج قضا هستم آب ننوشم زندگی کرده نمیتانم تنفس نکنم به تنفس نیاز دارم پس افعال ما به اساس مخلوق بودن ما افعال آجیزی و ناتوانی هست اگرچه بعضی افعال خوب هم داریم تشریش میکنم پس قاعده اصلی است که افعال که مخصوص الله جل جلوهو جل هست افعال است که به ذات الله جل جلوهو شایسته هست مگذره خوایم که ساده بگویم به خاطر که دوستای عزیز ما که طبقی به سواد و کم سواد هستن اینا بفاد پس او فعل ها افعال که مخصوص الله جللا جلو است افعال است که به بزرگی و عظمت الله جل جلو شایسته هست او افعال باید به این مخلوق مسکیین و عاجز بیچاره این مخلوق و اگر ولو که هم باشه باز هم به رحمت الله محتاج است پس ملایکه هم محتاج شد. پیغمبر باشه باز هم به رحمت الله محتاج است پس پیغمبر هم عاجز و محتاج شد. ولی الله هم باشه باز هم به رحمت الله محتاج است باز هم ای محتاج شد. پس اینال ما شما افعالی که مخصوص الله جل جلاله است عظمت بزرگی و جلال خالق در افعال بسیار خوب واضح است. پس رزق دادن، خلق کردن مخلوقات، روزی دادن مخلوقات، شفا دادن مریض ها تدبیر, و اص... تدبیر زمین و آسمانه کردن، جنت و دوزخه تمام کائنات تدبیرش ها. ای سیاره ها را که انوز علم بشر در نصفش رسیده نصف دگیش بسیارش مانده. تدبیر همه از اینا مخصوص خالق میشه. پس ای افعال خالق هست. پس ما ادب داریم. چی میکنیم؟ تمام افعالی که مخصوص الله جل جلوه است. او را به الله جل جلوه نسبت میتیم. از الله جل می میخواییم. و او افعال نه به مخلوق نسبت میتیم و نه از مخلوق م توحید افعال شد توحید روبوبیت کی کیس خلق کرده آسمان زمینه الله جلجل جل. کی کشتیره در بحر مسخر ساخته الله جل جلجل کی بحرها را مسخر ساخته الله جلجل جل. کی آفتابه مسخر ساخته که ما را در نته به ما اندازه که ضرورت داریم برای ما انرژی بده الله جلجل جل. پس افعالی که مخصوص الله هست به شان و عظمت الله شایسته هست قایده شمیه است که ای افعال با الله جل جلاله نسبت می تیم یک از الله ای افالا می خاییم یا الله تو بر ما بته یا الله تو بر ما دختر بته یا الله تو بر ما صحت بته یا الله تو بر ما روزی بته یا الله تو بر ما شفا نصیب بکو یا الله تو تصرفت دی زمین و اسمان نس... است یا الله مرا ازی زلزله نجات بتی یا الله تو زنده کننده هستی بر ما زندگی بده یا الله تو میراننده هستی بر مرگ با نصیب بکو پس کل افعالی مخصوص عظمت خالق است. را با خالق نسبت میتیم و از خالق می‌خویم و یکی که افعال الله را از مخلوق نمی‌خویم چرا؟ به ادبی در مقابل خالق میشه و به در مقابل خالق اگر فیله از افعال الله را به مخلوق نسبت دادی به ادبی در مقابل خالق میشه و اینم به ادبی شرک میگن و الله جل جل هو به ادبی در مقابل حرکت کرده او را می‌بخشه لکن به ادبی در مقابل خدا نمی‌بخشه. لا یافته. لا غفر، ان الله لا يغفر ان بهی به ويغفر ما دون ذلک لمن يشاء الله شرك نميبخش و ما دون ذلك با غیر از شرک چیزای دیگه کی از گناه های دیگه کردیم می میبخشه زنا کرده باشه شراب خورده باشه دزدی کرده باشه اگر الله خاص میبخشه لكن شرک ابدا نميبخش چقدر مهم است خب این قسم اول افعال مخصوص الله جلاله جلوه با الله نسبت میدیم از الله میخواییم و او به مخلوق نسبت نمیدیم و از مخلوق نمیخواییم یک شد قسم دوم افعال است که مخصوص مخلوقی بیچاره هست افعال است که به شان و به عاجزی و به اونمون مخلوق بودن مخلوق شایسته و زیبنده است پس ما ای افعال است. که مخصوص مخلوق است به مخلوق نسبت میدیم از مخلوق می و ای افعال به خالق نسبت نمیتیم ای افعالی که مخصوص مخلوق ست چی هسته است که مخصوص مخلوق مخلوق دو قسم افعال داره بعضی افعالش افعال مثبت و خوب است و بعضی افعالش افعال زشت و ناشایسته هست افعال مخلوق بعضیش شایسته و خوب است و بعضش افعال زشت است بعض افعالش که شایسته و خوب است مثل عبادت نمودن به خالق سجده کردن به خالق نظر کردن به خالق خود قربانی کردن به نام خالق خود در مقابل خالق حیوان را به نام او زبحه کردن یعنی روی خدا انسان به طرف قبله بکنم و به میشکل اعمال خوبی است که مثلا انسان راست میگه راست گفتن صداقت کردن اینی تمام افعال خوبی هست که مخلوق می داشته باشه احیانا این مخلوق افعال زشت داره. افعال زشت ناپسنده چیست؟ مثل دروغ گفتن مثل غیبت کردن سخنچینی کردن اینی افعال زشت از این مخلوق است که را انجام میتن حرکات عجیب کردن رقصیدن آواز خواندن اینی کارهای زشت که مطابق، مخالف شخصیت انسان است سمیم قسم افعال مخلوق است که گاهی ای افعال به بی و کفر و مرتد شدنی از ای دلالت میکنه مثل سجده کردن در مقابل یک مخلوق سجده کردن در مقابل یک بوت زبح کردن حیوان در مقابل یک انسان در مقابل یک انسان زنده مثل هاجی و عروس در مقابلش حیوان زبح کردن و یا در مقابل قبر یک شخصیت حیوان رو زبحه کردن یعنی افعال است که افعال زشت مخلوق است که دلالت به کفر و بیمانی از اون میکنه بعضی از افعال مخلوق است که این افعال دلالت به آجیزی و ناتوانی مخلوق میکنه مثل این انسان که آجیز و ناتوان میباشه مثلا یک نفر پشیمان میشه چرا پشیمان میشه؟ یا را میکنه پس آن پشیمان میشه معلوم میشه که عاجز است عاقبت کار را نمیفهمه به خاطر پشیمان احیانا مثلا غذا میخوره نان خوردن دولت با عاجز انسان میکنه که اگر غذا نخوره اینسان از بین میره آب نوشیدن دولت با عاجز انسان میکنه خواب کردن دولت با عاجز انسان میکنه پس اینی افعال افعال مخلوق است اینال در اینج قاعده چی است ببین قاعده اول قاعده در افعال خالق چی هست؟ و دوم قاعده در افعال مخلوق چی است قاعده در افعال خالقی است که اول افعال خالق باید بشناسیم دوم وقتی که افعال افعالی که مخصوص خالق است ایره باید بشک شناختیم باز ایره فقط به الله جل جلاله نسبت بدیم پس وقتی که ما فهمیدیم که روزی دادن زنده کردن میراندن شفا دادن اینی کلش مشخصه فاتس که مخصوص خالق است ایر شناختیم؟ اینا دی ای باید فقط به با الله جل جلو نسبت بتیم. شرط دومش شرط سومی هست که امی افعالی که مخصوص خالق است ایر فقط از خالق طلب بکنیم از مخلوق طلب نکنیم چهارم شرطی است که امی افعالی که مخصوص خالق است ایر به مخلوق نسبت ندیم این چهارمیش و پنجمی است که افعالی که مخصوص خالق است ایره باید از مخلوق نخواهیم روزی دادن از مخلوق نخواهیم رزاق الله هست زنده کردن یا اولاد دادن از مخلوق نخواهیم به خاطر چی به خاطر که این مخصوص خالق است شفا از خالق بخوایم از مخلوق نخواهیم به خاطر که شفا مخصوص کی است مخصوص خالق است پس اینی پنج شرط از در افعال الله جل جلو افعال باید بشناسیم یک وقتی که شناختیم برید فقط از الله جل جلاله بخاییم فقط به الله نسبت بتیم به مخلوق نسبت ندیم و از مخلوق نخواهیم این پنج شرط است که ایره باید انسان مسلمان در افعالی که مخصوص خالق است از چیز افعالی که مخصوص مخلوق است چی شرط است اول شرط از این است که این افعال باید به با مخلوق نسبت بتیم اگر افعال عاجزی هست اگر دلالت به ضعفش میکنه و ناتوانیش میکنه این افعال بر مخلوق نسبت بتیم و شرط دوم است که این افعال که ده علامات ضعف و عجز و ناتوانی است ایره به خالق نسبت ندیم این دوم شرطه اول به چون مخصوص مخلوق است به مخلوق نسبت میدیم و چون مخصوص مخلوق است ایره به خالق نسبت نمیدیم و میگم که الله جل جلوه از ات که مخصوص مخلوق است از این پاک و منزه است این وقتی که الله جل جلوه از این صفتهای زشت پاک و منزه است این صفتها صفتهای ناتوانی هست بسیره هیچ وقت خالق نسبت نمیدید صفات افعال که مخصوص مخلوق است چرا؟ بخاطر خاطر که گفتیم در افعال مخلوق چی است؟ علامات آجیزی و ناتوانی هست اگر افعال ناتوانی مخلوق به خالق نسبت بتیم در اینجا ما شرک العیاذ بالله در افعال پیدا میشه و یهودی ها چرا مورد لعنت الله جل جلال جله قرار گرفتن به خاطر از ای که اینا چی میکردن بعضی از افعال زشت به شیمان شدن بالله که دلالت به چی میکنن به ضعف و ناتوانی میکنن ایره به الله جل جله نسبت دادن خوشتی گرفتن در کتابهای خود که ال... ال... بالله که اینا نسبت دادن که خالق بمرای مخلق خوشتی گرفت یا سبحان اللهی کلش دلاله چی از کفر و هستن. هسته بخیلی را بخیلی نمودن ایره هم العیاز بالله یهودییا به با الله جل, جل جل نسبت دادن و بخاطر از اینمی به در افعال الله جل, جل جل اینا چی شدن؟ مورد لعنت الله جل جل, جل قرار گرفتن پس انسان مسلمان در قسمت افعال باید بسیار احتیاط بکنه. بفاهمه که کدام افعال مخصوص خالق است. قایدی کلیش. کدام افعال مخصوص خالق است. او افعالی که مخصوص خالق است او رو باید از خالق بخواه و به خالق نسبت بده، از مخلوق نخواه و به مخلوق نسبت نده. چطور مثلا؟ مثلا زنده کردن یکی از افعال است که با جلال و عظمت خالق شایسته هست. پس خالق خلق کننده است اینال اگر کسی اینمی صفت به مخلوق نسبت میده میگه که فلانی نفر هم بچه بر مردم میده دختر میده اینجا شرک پیدا شد چرا؟ صفت خالقه به مخلوق نسبت ده. یا مثلا اینمی صفت خالقه از مخلوق میخواین میره پیش یک مخلوق که ای مخلوق تو بر ما بچه بتی یا دختر بتی. پس اینجا هم شرک در ای فعل پیدا شد که فعل مخصوص خالق است. تو رفتی اون از مخلوق خواستی. اگر گفتی که این کار را میتانه این هم ناروا و حرام است و شرک است. و اگر خواستی به رفتی پیش یک مخلوق بر ما بچه یا دختر بتی. پس اینجا این هم شرک است. انال میم سر نقطه اساسی در افعال که ما منعیسی یک انسان مسلمان موحد شی باید بکنم در قسمت افعال اول ما می که کدام افعال مخصوص خالق است که در قرآن و سنت بیان شده او افعالی که در قرآن و سنت بیان نشده که او را خالق به خود نسبت نداده او را ما به خالق نسبت نمیدیم پس اونمو را که الله جل جلو خودش به خود نسبت داده که بله من اینی اینی اینی افعال میکنم و این مخصوص ما هست پس الله جلجلو خلق کننده هست پس خلق کردن مخلوقات یکی از افعال الله جلجلو جل جلهست بناه ان ما مسلمان این فعل شناختم که خلق کردن مخصوص خالق است. اینال من مامنایتی یک انسان موحد چی میکنم ایرا فامیدم از کجا فامیدی؟ از قرآن فامیدم، از کجا فامیدی؟ از سنت فامیدم. انالو وقتی که ما فامیدم که الله جل جلله خلق رنده هست دوم نقطه چی باید بکنم؟ ما فعله فقط به الله جل جلله نسبت میدم. پس هر کس از ما پرسان کنه که خالق رنده زمین، آسمان، زن، مرد، حیوانات، پرنده ها کی هست؟ ما میگم خالق همه. الله جلال جلوه است به یه اعتقاد داری عقیده دارم دوم کاری که میکنم ایس فیله به مخلوق نسبت نمیدم نمیگم که فلانی پیغمبر خلق کننده است یا ملائکه خلق کننده است العیازو بله ملائکه خلق کننده نیست چون خودش مخلوق است پیغمبر خلق کننده نیست خاطر که مخلوق است اولیاء الله خلق کننده نیستن بخاطر چی که مخلوق هستن دیگه انسان ها خلق کننده نیستن بخاطر چی؟ بخاطر زی که اینها مخلوق هستن پس آسمان زمین مخلوق خلق کننده نیست نمیتانه خب وقتی که خلق کننده صفت الله جل, جل جلوه شد او هست که حیات میتبر مردم یحی زندگی میتن پس اول فاهمی که زنده کننده خلق کننده و زندگی دهنده ح... یا دهنده کیست؟ الله جل جلوه است یوحی و یومید یوحی زنده میکنن و یومید و میمیرند پس الله جل جلو شد اول شناختم باز نسبت دادم به الله جل جلهو. سومی نقطه اینمی زنده کردن از کی میخوایم؟ از خالق میخوایم چه قسم از خالق میخوایم؟ اگر میخوایم که پسر داشته باشم میگم که یا الله ما فرزند نصیب بکن این از کجا گرفتیم این هم در قرآن عظیم و شان هستن چرا به خاطر ازی که پیغمبر وقتی که زکریا علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام وقتی که میخواین اولاد داشته باشن زکریا علیه السلام دعا میکنه که ربی انی وهن العظم و منی رأس الراس و شیب و پروردگار هم بسیار پوسیده شده سرمم سفید شد دیگه سر وری شما این سفید از دیگه امیدی اولاد ندارم لاکن پروردگار را تو برم اولاد بتی باز الله جل جل بر زی فرزند داد یحیی علیه السلام، بر زکریه علیه سلام فرزند داد بر ابراهیم علیه السلام در سن پیری حضرت اسماعیل علیه السلام داد چرا؟ بخاطر ازی که اونها پیغمبرا ها بودن و وحدانیت خوب توحید میفهمیدن از الله میخواستن و الله جل جل برشان داد پس دومی کار چی شد که وقتی که صفت هم من شناختم ایره فقط از الله جلده جلده هو به الله نسبت دادم به مخلوق نسبت ندادم از الله خواستم از مخلوق نمی من نمی از مخلوقی برای ما بچه بتی یا دختر بتی حضرت محمد هم برای بچه و دختر داده نمیتونست تانست صحابه اکرام نمیتونستن تانستن نتونستن نمی تانستن تابین پس تاب... هیچ مخلوق نمیتونه برای کسی بچه و دختر بده. پس اینه از مخلوق نمی خواهیم. وقتی که از مخلوق نخواستم این اینجا چی شد؟ اینجا شد که انسان انسان موحد و یکتا پرست شدیم. چرا؟ آنچه که فعل مخصوص الله بود و به الله نسبت دادیم و از او خواستیم. همین قسم روزی دادنه. همین قسم شفا دادنه. ما پیش مخلوق نمیره که بر ما شفا بده در عالم اسباب پیش دکتر میریم دکتر دوا میده لكن پروردگار شافی تو هستی شفا ده تو هستی تو برای ما شفا بده اگر می که مالک متصرف مالک متصرف الله جلجل پس جل، پروردگار مرا تو و نگاه میکنی مادر و پدر منت تو حفظ نگاه میکنی این شهر کابل تو نگاه میکنی این ولیتها را تو نگاه میکنی ای دنیا را تو نگاه میکنی. استرالیا را تو نگاه کردی امریکان کل دنیا را کلش حفظ از اینا و تصرف در اینا به الله جل جلو است پس ای را به الله نسبت میدیم به مخلوق نسبت نمیدیم نمیدیم که ولی فلانی تصرف بدست است. شعر کابل فلانی نگاه میکن ای را و فقط از الله میخواییم از مخلوق نمیخواییم و به ای شکل ایشد ایشد در قسمت صفات الله جل جلوه برعکس از وقتی که در صفات مخلوق آمدیم میگیم که انسان های خوب هم داره افعال خوب هم داره افعال زشت هم داره افعال خوبی که داره خداوند سرش رحم بکنه. افعال زشتی که داره او رو دعوت میکنیم که تو کارهای شرکی نکو. اگر افعال بدی داره که او افعال زشت و ناروا و نادرست است برش میگیم برادر عزیز این خواهر محترم اینی دروغ گفتن، اینی غیبت کردن، اینی بدبختی ها کس ازیش سخن چینی نکن، کارای بد نکن. پس دوو خسمت هم دعوتش میکنیم که امو افعال زشت انجام نده. و بعض افعالی که دلالت میکنه به آجیزی و ناتوانی مخلوق. این مخلوق هست پشیمان میشن. این مخلوق هست نان میخورن. این مخلوق هست خواب میکنه سر این مخلوق این پینگی گرفته چشماش پت پت میشه خواب میبریشن پس اینی افعال افعال است که دلالت میکنه به آجیزی و ناتوانی و ضعف انسان پس این افعال مخصوص به انسان میگیم بله ما انسان هستیم میخوریم ما انسان هستیم ازدواج میکنیم ما انسان هستیم اولاد به دنیا میریم ما انسان هستیم نیازی به همسر داریم، نیازی به همکار داریم. پس این کلش ای افعال افعال ما هست. افعالیه که ما نیاز داریم پشیمان میشیم، ما میخوریم، ما نوشیم ما تنفس میکنیم. اینی کل افعالیست که به عجز ما تعلق میگیره، و ای که ما عاجز و ناتوان هستیم. پس میگه ما مخلوقات هستیم، ای افعال برای ما هست. پس ای افعال که دلالت با عجیزی میکنن این افعال فقط به مخلوق نسبت میتیم ایره به خالق نسبت نمیتیم چون خالق نیازی نداره به ای افعال و ذات است که جلال و عظمت از او تقاضه زیره میکنه که افعالی که به مخصوص به مخلوق است او به خالق نسبت دادن خالق او افعال نکنند نداشته باشه چون ای ش... افعال مخلوق است پس ما ای افعال به بخال... مخلوق افعال ضعف و عاجزی رو به مخلوق می نسبت میدیم و به خالق نسبت نمیدیم به خاطر که میفهمیم که اگر افعال عاجزی مخلوق به خالق نسبت داده شود بیادبی به خالق میشه و بی ادبی به خالق ای شرک گناهی بسیار خطرناک است که العیوز بلا انسانا به شرک و به کفر و بیدینی میکشن الله جلجل و همه مشمول توفیق بتا که کار بکنیم که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته